به میدان رفتن بستگان امام حسین علیه السلام جانبازی و شهادت علی اکبر علیه السلام یاران امام حسین علیه السلام همه به شهادت رسیدند و جز خواندانش کسی باقی نماند در این هنگام علی اکبر علیه السلام برای رفتن به میدان آماده شد او دارای زیباترین چهره و نیکوترین سیرت بود از پدرش اجازه رفتن به میدان طلبید امام علیه السلام به او اجازه داد سپس نگاهی معیوسانه به قد و قامت علی اکبر علیه السلام نمود و چشمانش را به زیر افکند و گریه کرد آنگاه گفت خدایا گواه باش جوانی که در صورت و سیرت ظاهر و باطن و گفتار شبیه ترین مردم به رسولت پیام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و هرگاه مشتاق دیدار پیام برد شدیم به این جوان نگاه می کردیم برای جنگیدن با این مردم رهسپار شد امام حسین علیه السلام صدا زد ای پسر سعد خدا ریشه رحم تو را قطع کند کند گونه که تو رحم مرا می میکنی علی اکبر علیه السلام به دشمنان حمله کرد و جنگ سختی به آنها نمود گروه بسیاری از آنها را به خاک حلاکه افکند سپس نزد پدر بازگشت و صدا زد ای بابا شدت تشنگی جانم را به لب رسانده و سنگینی اسلحه مرا به زحمت انداخته آیا جرعه آبی هست که به دستم رسد امام حسین علیه السلام گریه کرد و فرمود آه از بیپناهی ای پسر جانم از کجا آب بیاورم برو اندکی با دشمنان جنگ کن چقدر نزدیک است که با جدت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیدار کنی او با کاسه پر از آب تو را سیراب خواهد کرد که پس از آن هرگز تشنگی وجود ندارد علی اکبر علیه السلام به میدان بازگشت و جنگ بسیار شدید و نمایانی نمود سرانجام منقذ ابن مرهٔ ابدی آن حضرت را هدف تیر قرار داد همین تیر موجب افتادن علی اكبر علیه السلام بر زمین شد صدا زد ای بابا آخرین سلامم بر تو باد اینک این جدم است که سلام به تو میرساند و به تو می زود زودتر به سوی ما بیا سپس سیهی بلند زد و جان سپد امام حسین علیه السلام به بالین علی اکبر علیه السلام آمد دید از دنیا رفته است به بالین او نشست و خم شد و گونه خود را بر گونه علی اکبر نهاد آنگاه فرمود خدا بکشد آن مردمی که تو را کشتند چقدر آنها بر خدا و حدکی حرمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گستاخی نمودند پس از تو خاک بر سر دنیا حضرت زینب علیه السلام از خیمه بیرون آمد و صدا میزد. زد ای محبوب دلم ای برادر زادم با این وضع به بالین علی اکبر علیه السلام آمد و خود را روی پیکره به خون غلطیده او افکند در این هنگام امام حسین علیه السلام نزد خواهر آمد و او را به خیمه زنها برگردانی شهادت حضرت قاسم علیه السلام سپس مردان اهل بیت امام حسین علیه السلام یکی بعد از دیگری به میدان جنگ میرفتند و جماعتی از آنها به دست دشمنان به شهادت رسیدند امام حسین علیه السلام صدا زد ای پسر اموهایم صبر و تحمل کنید ای خاندان من شکیبا باشید سوگند به خدا هرگز بعد از امروز خاری نخواهید دید در این هنگام جوانی که صورتش گویی همانند پاری ماه میدرخشید به سوی میدان خارج شد و به نبرد با دشمنان پرداخت. سرانجام ابن فزیل ازدی چنان زربهی با شمشیر بر سرش زد که سرش را شکافت. قاسم علیه السلام از ناحیه صورت بر روی زمین افتاد. صدا زد ای امو جان به دادم برست. امام حسین علیه السلام همچون باز شکاری به میدان تاخت و همچون شیر خشمگین به دشمن حمله کرد. و شمشیری بر ابن فوزیل زد او دستش را سپر شمشیر قرار داد دستش از آرنج جدا گردی نعره او بلند شد لشگر دشمن آمدند تا ابن فوزیل را از دست حسین علیه السلام نجات دهند در این بین بدن نازنین قاسم زیر دست و پای اسب ها قرار گرفت و همان دم به شهادت رسید وقتی که گرد و غبار نشست دیدن حسین علیه السلام بر بالین قاسم علیه السلام ایستاده و قاسم علیه السلام از شدت درد پاهایش را بر زمین میساید و امام حسین علیه السلام میفرماید از رحمت خدا دور باد آن قومی که تو را کشتند و کسی که در قیامت در مورد تو در دادگاه عدل الهی با آنها مخاسمه می میکند جد و پدر تو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پدرت است. سپس فرمود سوگند خدا بر امویت سخت است که تو او را بیاری یاری بخانی ولی او دعوتت را اجابت نکند یا اجابت کند ولی جواب او سودی به تو نداشته باشد. سوگند خدا امروز روزی است که دشمنان امویت بسیار و یاورش اندکه است. سپس امام حسین علیه السلام پیکر به خون تپیده غاسم علیه السلام را بر سینه گرفت و آن را به سوی خیمه ها آورد و در کنار پیکرهای شهیدان اهل بیتش بر روی زمین نمید. شهادت علی اصغر علیه السلام وقتی که امام حسین علیه السلام دید همه جوانان و دوستانش کشته شدند تصمیم گرفت خود به میدان رفته و با دشمن بجنگد به, به میدان آمد و صدا زد آیا دفاع کننده هست که از حریم حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و دفاع کند آیا خدا پرستی هست که در مورد ما از خدا بترسد؟ آیا دادرسی هست که به امید آنچه در نزد خداست از ما دادرسی کند؟ آیا یاوری هست که به امید آنچه در نزد خداست به ما کمک کند؟ با شنیدن صدای مظلومانه امام حسین علیه السلام ناله و شیون بانوان حرم بلند شد. امام حسین علیه السلام به در خیمه آمد. به زینب علیه السلام فرمود کودکم را به من بده تا با او خداحافظی کنم امام حسین علیه السلام کودک را که عبدالله یا علی از قرنام داشت گرفت همین که خواست او را ببوسد در همین هنگام هر ملت ابن کاهل اسدی او را هدف تیر قرار داد آن تیر بر حلقومش نشست و سر آن کودک را از بدن جدا جدانمون امام حسین علیه السلام به زینب علیه سلام فرمود این کودک را بگیر سپس هر دو کف دستش را به زیر گلوی کودک گرفت کف دستهایش پر از خون شد آن را به سوی آسمان افکند و فرمود آنچه اندوه مصیبت را برایم آسان کند این است که خداوند می بیند امام باقر علیه السلام فرمود از این خون قطره ای به روی زمین نرید جانبازی و شهادت حضرت عباس علیه السلام روایت کننده گوید تشنگی حسین علیه السلام شدید و طاقت فرسا شد آن حضرت همراه برادرش عباس علیه السلام بر فراز تپه مشرف بر آب فراد رفتند که وارد آب فراد شوند عباس علیه السلام جلوتر حرکت می کرد سپاهیان عمر سعد جلوی آنها را گرفتند و درگیری شدیدی رخ داد مردی از بنی دارم حسین علیه السلام را هدف تیر قرار داد تیر به زیر چانه آن حضرت اصابت کرد حسین علیه السلام آن تیر را بیرون کشید دستهایش را زیر گلو گرفت کف‌های دستش پر از خون شد سپس آن را به طرف آسمان پاشید و عرض کرد خدایا شکایت آنچه را با پسر دختر پیام برد انجام شود به درگاه تو میآورم. در این درگیری عباس علیه السلام را از حسین جدا نمودند و از هر طرف به عباس علیه السلام حمله کردند تا او را کشدند حسین علیه السلام در سوگ شهادت عباس گریه بسیار سخت کرد شاعر عرب در این باره چنین گوید سزاوار ترین شخص به گریه کردن آن جوانی است که حسین علیه السلام را در کربلا از مصیبتش به گریه اندا او برادر حسین علیه السلام و فرزند پدرش علی علیه السلام به نام ابل فضل بود که پیکرش آغشته به خون شده بود همان جوانی که نسبت به حسین علیه السلام مواسات و ایثار نمود و هیچ چیز او را از برادری با حسین علیه السلام منصرف نساخت و وقتی که با شدت تشنگی کنار آب فرات آمد چون حسین علیه السلام تشنه بود آب ننوشید